آن که رخسار تو را رنگ گل و نسرین داد صبر و آرام توانت به من مسکین داد وان که گیسوی تو را رسم تتاول آموخت هم توانت کرمش داد من غمگین داد من همان روز زفرحات معب بریدم که انان دل شیدا به لب شیرین داد گنج زرگر نبود کنج قناعت باغی است آنکه آن داد به شاهان به گدایان این داد خوش عروسی است جهان از ره صورت لیکن هر که پیوست به دو عمر خودش کاوین داد بعد از این دست من و دامن سر و لب جوی خاص اکنون که سبا مجده فروردین داد در کف قصه دوران دل حافظ خون شد از فراغ رخطی خاج قبام الدین داد